فراخانی ساکنان خلنگزارها ممکن است در هنگام فروخفتن قروب روز بعد کسی مسافری را دیده باشد که به خلنگزارهایی رسید که اندکی به سمت جنوب شرقی ارل برهاشیه کشزارها قرار دارند و برهوت دهشتناک خود را تا افق و حتی تا آن سوی مرز و تا درون سرزمین پریان گسترانده اند. اکنون که روشنایی زمین را ترک می کرد، خلنگزارها سوسو می زدند. لباسها و کلاه رسمی بلند مسافر چنان سیاه بود که میشد او را از دور در میان سبز تیره دشتها دید که در میان قروه خاکستری به هاش خلنگزار می رود. اما در آن ساعت هیچکس در آنجا و نزدیک آن مکان متروک نبود تا او را ببیند، چون تهدید تاریکی همان هنگام هم در دشتها حس می و تمامی گاوها به خانه باز گشته و کشتکاران در کلبه هاشان گرم بودند. بنابراین مسافر به تنهایی گام میزد و کمی بعد از راه ناامن به نیزار رسید که به قصههای های بادگوش سپرده بودند. قصههایی هایی که هیچ معنایی برای انسان ندارند. داستان‌های بلندی از تنهایی و افسانه‌های کهن باران و در همین هنگام مسافر به سرزمین پشت پشتسرش نگریست که به تاریکی می‌گرایید. روشنایی‌های خانه‌ها از میان تاریکی آغاز به سوسو زدن کردند. با جدیت و وقار کسی راه می‌رفت که کار مهمی با آدم‌ها دارد، اما پشتش به خانه‌های آنها بود و به جای می‌رفت که هیچ انسانی از آنجا نمی‌گذشت. به سوی هیچ دهکده یا کلبه دور افتادهی نمی رفت چون خلنگزار راست به درون سرزمین پریان فارو می رفت. بین او و مرز شکوه مندی که زمین را از سرزمین پریان جدا می کند، هیچ انسانی نبود و اما مسافر همچون کسی که معمولیتی جدی دارد راه می رفت. با هرگام موقعی که برمی داشت خزه ها می و گویی خلنگزار در میانش می و چوب دست ارزشمندش جرف در لجن فرو میرفت رفت بیان که یاریش کند و اما گویی مسافر تنها به وقار حرکتش اهمیت می‌داد. بدین ترتیب با سلوکی به همان آهستگی در آن خلنگزار مرگبار پیش میرفت که پیران در روزهای ویژه بازار را میگشایند و مهمترین آنها معامله را تقدیس می‌کند و سپس تمامی کشتکاران برای معامله به قرفه ها میآیند و پرندگان ترانه بالزنان بال زنان به خانه می رفتند و برای رسیدن به آشیانه های طبیعیشان حاشیه خلنگزار را دور میزدند کبوترها از فراز زمین میگذشتند تا بر درختان بلند و تیرهشان آرام گیرند و واپسین گروه كلاقها رفته بودند و آسمان خالی شده بود و اینک خلنگزار شگرف از شنیدن خبر آمدن یک بیگانه میلرزید چون به محض اینکه مسافر پایش را بر جلبکهای شکفته در برک گذاشت لرزشی از ریچه هاشان و از های نیها گذشت و همچون نوری از زیر سطح آب گذر کرد و تمامی خلنگزار را پیمود و لرزان به مرز شفق جادویی رسید که سرزمین پریان را از زمین جدا می و آنجا هم باز نایستاد بلکه مرز را هم آشفت و از آن گذشت و در سرزمین پریان حس شد چون جایی که خلنگزارهای عظیم به مرز زمین میرسد، تراکم و مقاومت توده شفق کمتر از هر جای دیگر است و تا اشباه روشن خلنگزار آن لرزش را در ژرفای باتلاق‌ها حس کردند از خانه‌هایشان در آن اعماق به روی آب آمدند و روشناییشان را موج دادند تا مسافر را در ساعتی که اردکها به سوی خانه میپریدند، بر روی جلبک های لرزان به پیش راهنمایی کنند پاورقی اشباه روشن خلنگزار ویل او دویسپ روشنایی فلورسنتی که به شکل اشباهی مبهم بر روی زمینهای باطلاقی دیده می شود ادامه داستان و در زیر جنبش و حیجان و شادی بال زدن اردکها در آن ساعت مسافر آن روشنایی های مواج را دورتر و دورتر در درون خلنگزارها دنبال میکرد. اما گاهی از آنها روی بر می گردند و برای مدتی به جایی آنکه اشباح روشن به عادتشان او را راهنمایی کنند، خودشان او را دنبال می کردند تا اینکه می توانستند او را دور بزنند و در برابرش قرار گیرند و دوباره راهنماییش کنند. اگر بینند در آن روشنای اندک و آن مکان خوفناک می بود، پس از مدتی، متوجه شباهت غریبی بین حرکات باوقار مسافر با حرکات مرغ باران سبز میشد که در بهار بیگانه ای را به دنبال خود می کشد و از ساحل خزه و از مکان تخمهای بیحفاظش دور می کند یا شاید چون این شباهتی تنها یک خیال بافی باشد و بیننده متوجه چنین چیزی نمی شد در هر حال در آن شب در آن مکان متروک هیچ بیننده ای وجود نداشت و مسافر راه شگفتنگیزش را دنبال می کرد. گاهی به سوی خزه های خطرناک و گاهی به سوی زمین سبز ایمن می رفت. و در هر حال سلوکی جدی و خراموشی موقرانه داشت و روشن خلنگزار در شمار بسیار گردش جمع شده بودند و آن لرزش جرف که همچنان گام گذاشتن بیگانه ای را بل تجنزار زیر ریشه نیها به خلنگزار هشدار میداد و آنگونه که می بایست با مرگ بیگانه متوقف نمی شد و همچون گونه ای پشواک آهنگی که جادو جادوانش کرده بود از خلنگزار میگذشت و اشباه روشن خلنگزار را حتی در آن سوی مرز سرزمین پریان می آشفت. اکنون اصلا نمیخواهم چیزی به زیان اشباه روشن خلنگزار یا چیزی که ممکن است تحقیر آنان شمرده شود بنویسم چون این ساختاری نباید در نوشته‌های من ظاهر شود اما همه می‌دانند که ساکنان خلنگزارها مسافران را تا سرحد حد مرگشان می‌فریبند و صده ها از این سرگرمی لذت بردهاند، و شاید این اجازه را داشته باشم که بدون هیچ گونه عدم تعییدی به این موضوع اشاره کنم. پس اشباه روشن خلنگزار که گرد این مسافر جمع شده بودند با خشم تلاششان را دوچندان کردند و هنگامی که مسافر بر لبه مرگبارترین بارترین برکه ها آخرین دام های آنها را پشت سر گذاشت و همچنان زنده ماند و همچنان پیش رفت و سراسر خلنگزار از این ماجرا آگاه شد اشباه روشن خلنگزار بزرگتری که در سرزمین پریان مقیم بودند از منجلابهای جادوییشان برخاستند و از مرز به این سو هجوم آوردند و سراسر خلنگزار آشفته شد ساکنان خلنگزار کم و بیش همچون ماههای کوچک گستاخی در برابر آن مسافر محترم میدرخشیدند اقوام‌هایش را به لبه مرگ راهنمایی می‌کردند و باز رد پای خود را پیش می‌گرفتند تا یک بار دیگر او را به بازگشت فرا بخوانند و سپس آن موجودات سبکسر اندکندک با وجود بلندی کلاه و درازی کت سیاه مسافر دریافتند خزه‌هایی وزن او را تحمل می‌کنند که پیش از این هرگز از هیچ مسافری پشتیبانی نکرده بودند خشمشان از این افزون شد و همه به سویش نزدیک تر جهیدند و هر جا که می رفت، نزدیک و نزدیک تر به گردش حلقه می زدند و در خشمشان افزونشان اثر خود را از دست می داد. و اکنون اگر بینندهای در خلنگزار بود چیزی بیشتر از مسافری در میان گرفته شده با اشباه روشن خلنگزار می دید. چون ممکن بود متوجه شود به جای این که اشباه روشن خلقزار مسافر را راهنمایی کنند کم و بیش او بود که آنها را هدایت می کرد. و ساکنین خلنگزار در بیتابیشان برای کشتن او هرگز به این نیندی شیدند که همگی به زمین خشک نزدیک و نزدیک تر می شود. و هنگامی که همه جا جز آب تاریک شد ناگهان دیدند در سبززاری هستند و پاهایشان بر زمین زبر ساییده می شود و مسافر در همین هنگام نشسته بود و دستهایش را به گرد زانوهایش حلقه زده بود و از زیر لبه کلاه سیاه بلندش به آنها مینگریست پیش از آن هرگز حتی یکی از آنها توسط مسافری به زمین خشک کشیده نشده بود آن شب در میان آنان اشباهی پیر و عظیم بودند که با روشنایی های محتابگونهشان راست از آن سوی مرز سرزمین پریان به میان آنها آمده بودند. هنگامی که لنگان لنگان بر سبز زار افتادند با نخوشنودی به یکدیگر نگریستند چون زبری و سنگینی زمین سفت آنها را در تنگنا قرار داده بود. و سپس اندک اندک دریافتند که آن مسافر وقار که چشمهای تابانش چنان زیرکانه به آنها مینگریست با وجود حالت موقرش تنها اندکی از خودشان بزرگتر بود البته نیرومندتر و تنومندتر بود اما چندان بلند بالا نبود با خود گفتند او کیست که اشواه روشن خلنگزارا فریب داده است و برخی از پیرترها که از سرزمین پریان آمده بودند، به سراغش رفتند تا شاید بپرسند با چه جرعتی آنها را فریب داده است. و سپس مسافر سخن گفت، بی آنکه سرش را بلند کند یا بگرداند، همانطور نشسته سخن گفت. گفت، مردم خلنگزار آیا از پای شاخدار را دوست دارید؟ و با شنیدن واژه اسب شاخدار خنده و ریشخنده هر قلب کوچکی را در آن تعداد سر سرشار کرد و هر احساس دیگری را از میان برد. بدین ترتیب آزردگیشان را از فریب خوردن فراموش کردند. هرچند فریفتن اشباه روشن خلگزار در میان آنها سخت ترین توهین محسوب می شد و اگر حافظه ای دراز مدت می داشتند هرگز آن را نمی بخشودند با شنیدن واژه اسب شاخدار همگی در سکوت خندیدند و این کار را با بالا و پایین پریدن همچون تکان خوردن نور منعکس شده از آینه کوچکی که دست بازیگوشی آن را تکان میدهد انجام دادند اسبهای شاخدار علاقه اندکی به آن موجودات مغرور داشتند بهتر است یاد بگیرند هنگامی که برای نوشیدن آب به برکه های ساکنین خلنگزار میآیند، سخن گفتن با آنها را بیاموزند بهتر است یاد بگیرند به شگرفترین روشنائی های سرزمین پریان و روشنایی‌های های کوچکتری که خلنگزارهای زمین را روشن می‌کنند، احترام بگذارند پیرترین شبه روشن خلنگزار گفت نه هیچکس کس از پای شاختار مغرور را دوست ندارد مسافر گفت پس بیایید آنها را شکار کنیم هنگامی که شب هنگام ما با سگهای من در دشتهای انسان آنها را دنبال می شما با روشناییتان راه ما را روشن کنید پیرترین شبه روشن خلنگزار گفت مسافر محترم اما با شنیدن این واژهها مسافر کلاهش را از سر انداخت و از میان ردای سیاه بلندش بیرون پرید و برهنه در برابر اشباه روشن خلنگزار ایستاد و ساکنین خلنگزار دیدند جن نیست که آنها را فریب داده است چندان از این موضوع خشمگین نشدند چون بارها و بارها و دوره بسیار ساکنین خلنگزار چندان جنها را و جنها چندان ساکنین خلنگزارها را فریب دادند که تنها خردمندترین آنها می تواند بگوید کدام دیگری را بیشتر فریب داده است و چند نیرنگ جلو است اینک با اندیشیدن به روزگارانی که جنها آفریده شدند تا خندهدار جلوه کنند خود را تسلی می‌دادند و به آوردن هایشان به شکار از پای شاخدار رضایت دادند چون به هنگام ایستادن بر روی زمین خشک خواسته های خودشان ضعیف بود و به سادگی با هر پیشنهادی موافقت می‌کردند و از هوس هر کسی پیروی می‌کردند لورولو بود که بدین ترتیب با دانستن اینکه اشباه شبانه خلنگزار از فریب دادن مسافران خوششان میآید آنها را فریب داده بود و با استفاده از بلندترین کلاه و رسمیترین ردایی که توانسته بود بدزدطعمه ای برای آنها ترتیب داده بود که میدانست آنها را از دور دست ها به سوی خود میکشاند اکنون که همه را بر روی زمین خوش گرد آورده بود و قول روشنایی و یاریشان را بر علیه از پای شاخدار گرفته بود که البته به خاطر قرور از پای شاخدار این موجودات به سادگی قولش را میدادند. آنها را به سوی روستای ارل راهنمایی کرد. نخواست آهسته تا پاهایشان با زمین سفت عادت کند و سپس آنها را لنگ لنگان از میان دشتها به ارل آورد. و اکنون دیگر هیچ چیز در خلنگزارها نبود که شبیه انسان باشد و غازها در حیاهوی بال زدنشان پایین آمدند مرغابی کوچک چابکی به خانه چپید و هوای تاریک با پرواز اردکها به لرزه درآمد آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین‌های سحرآمیز سفر کنین جایی که پری‌ها و